وقتی میشه factorization ولی در اصل اهمیت در که اون فاکتور تو سازمان داره یعنی که درجه اهمیت اون سازمان این فاکتور تو داره. چه خبر؟ واضح خوبه؟ بادارشوش. باید رو شامی بر چرا؟ بر یه بار دیگه یه خب اگه سوالی هست من در خدمت مون هستم از جلسات گذشته سوالی داری؟ سوالی میستی؟ سوالی <تصال> میزه این مجسد آخر توپ به توپ دیگه همانی نه. خوب مطالعه می‌کنم. خب اجازه بد من اگر داشته باشم الان چیزی که تا الان ما گفتیم <تصفيق> بعد والد بحث جدید بشه این وقت که دارم هر درس و متوجه نبشه مدیریت استراتژیک که متوجه بشه چون در برگیرنده به شکل تمام درس هست. و تو هم جلسه اول هم خدمتون که این درس معمولا آخرین درس ارائه میشه تو دوره NBA حالا اینجا و جاهای دیگه تو NBA بیه هرفی درس اول آوردن سمستر دو گذاشتن تلم دو گذاشتن دیگه دو یعنی بعد از پنج درس 6 درسی که شما میگذارانید بعد این درس رو ارائه میشه خب ببینید ما از جلسه اول به خدمتون بودیم مفاهیم مدیریت استراتژیک رو گفتیم و گفتیم که در مدیریت استراتژیک خب این فلسفه بسیار مهمه چرا؟ به خاطر اینکه سازمان ها بسته نیستن بازن و سازمان ها با محیط بیرونشون در تعاملن محیط بیرونی هم تحت کنترل سازمان نیست تحت مدیریت سازمان نیست و فرصفه مدیریت استراتژیک باید خیلی جدی بهش نگاه بشه تو سازمان ها اگر سازمان ها رو به جلو حرکت کنن و معفض باشن اگر سازمان ها میخوان داینامیک باشن و فدمت شما گفتیم که در مدیریت استراتژیک کسی که مسئولیت اصلی این فرایند و به امتداره داره ها هستن یا جنرال های سازمان استراتژیست ها کسانی هستند که نسبت به سازمان، نسبت به محیط بیرونی سازمان نسبت به زین سازمان حس دارن میشناسن سازمان و به خاطر اینه که ما میگم این سرهر بعد توسط استراتژیستان بشه در شکست اجرای استراتژی رو ما خدمتون گفتیم گفتیم چرا مثلا استراتژی در سازمان ها شکست میخورن بر اساس تحقیقاتی که آیا نورتون و کاپلان انجام دادن چهار دلیل براش به دست آوردن یکی بحث چشمنداز سازمانه یعنی اکثر پرسنل سازمان چشمنداز سازمان متوجه نمیشن بحث منابع انسانی خیلی از پرسنل سازمان ارتباط درست و موثری با بحث استراتژی برقرار نمی‌کنن یکی از دلایلش بحث خود مدیران مدیران تفکر استراتژیکو به دلیل مشغله روزمره ای که دارن فراموش میکنند. و یکی در بحث منابع مالی ما واقعا برای برنامه ریزی و اجرای استراتژی چقدر پول اختصاص میدیم خب چقدر تو بودجه سالیانمون می‌بینیم و به خاطر همین دلایلی که بعضا فرایند مدیریت استراتژیک با شکست مواجه میشه ببینید در فلسفه مدیریت استراتژیک ما گفتیم استراتژی یعنی حرکت از وضع موجود به سمت بعض مطلوب اصلا استراتژی یعنی همین استراتژی یعنی رسیدن به اهداف اگر ما بخوایم خیلی خلاصه استراتژی رو تعریف بکنیم استراتژی یعنی رسیدن به اهداف تدوین استراتژی رو استارتش هم زدیم در سطوح مختلف سازمان همونجوری که خدمتون گفتیم گفتیم که اگر سازمان ما به شکل یک مثلث ببینیم خب پیک این رسیدن رسیدنی به چشمنداز و رسالته درسته؟ گفتیم چشمنداز یعنی آرزوی دستیافتنی یک مدیر هدف اصلیه که هر سازمان و مدیری دنبالشه در چشمنداز سه عامل بسیار مهمه که دیده بشه این که چشمانداز بعد متمرکز باشه ارزه، ارزش ده باشه و به محیط رقابتی توجه بکنه جدا از چشمانداز سازمان باید رسالت رو هم مشخص کنه یا میژن رو مشخص کنه رسالت یعنی این که ما چه محصولات و خدماتی رو داریم تولید می‌کنیم با چه مزیت‌های رقابتی و تمایزهایی برای چه مشتریانی و برای چه بازارهایی یعنی میژن استیتمنت باید دیده بشه پس ببینید هدف اصلی هر سازمانی اوکی چشمنداز و رسالته به عبارت دیگه مدیریت استراتژیک یا استراتژی راه رسیدن به چشمنداز و رسالته چون اهداف اصلی هر سازمانی چشمنداز و رسالته و مدیریت استراتژیک یعنی راه رسیدن به چشمنداز و رسالت بعد شما عرض شود که ما تو جلسات گذشته بحث تدوین سند استراتژیک رو داشتیم تدوین سند استراتژیک خب گفتیم برای تدوین سند استراتژیک در پله اول خب ما استراتژی های کلان شرکتی رو داریم استراتژی های کلان شرکتی خب نحوه تدوین استراتژی های کلان شرکتی و ابزارهایی که برای تدوین این استراتژی ها به کار میره رو در جلسات گذشته ما خدمتون گفتیم یه ویدیو من میکنم، کمکم کنید؟ ابزار اول، ابزار سوات, سوات. سوات. سوات. یعنی به عنوان یه ابزار برای تدوین استراتژی کلان شرکتی گفتیم، وقتی که شما سوات رو در میارید برای سازمان بعد از اون باید ماتریس جی. جی. وقت که سوات استخراج میکنید بعدش باید ماتریس جی ای رو در بیارید و ببینید وضعیت سازمان چجوریه باید رشد باشه باید کاهش باید باشه باید تدافعی باشه باید ترکیبی از اینا باشه و بعد از ماتریس جی ای ماتریس توز رو ما استخراج کردیم خب که در ماتریس توز عملا برنامه ریزی استراتژیک رو ما انجام میدیم بر اساس سوارت درسته؟ و در نهایت رفتیم به سمت ابزار کیو اس کیو فقط اولویت بندی استراتژی هاست خب اولویت بندی آن استراتژی هایی که ما در توز در حقیقت نوشتیم حالا دوستان یه داستان اینجا وجود داره. خیلی از شرکت ها و سازمان ها سند استراتژیکشون تا اینجا میبردن خب و زیاد اشتباه همین سواد رو مینیو می‌کنن، میندازن تو ماتریس جی‌ای، بر اساس طوز استراتژی‌ها رو استخراج می‌کنن، مینیو می‌کنن و اولویت‌بندی‌ام می‌کنن. بسته ته میشه. یعنی سند استراتژی کلان شرکتشون بسته میشه. ولی واقعیت امرش همونجوری که من خدمت شما گفتم، خود سواد اشکالاتی داره. سواد اتفاقاً برخلاف همون دید اولیه‌ای که شما بهش نگاه می‌کنید، فوق‌العاده ابزار سخت و پیچیده‌ایه. فوق‌العاده ابزار سخت و پیچیده‌ایه. چون خیلی کلیه خیلی است به عوامل مختلف و اینه که شما چهار عامل تحت عنوان نقاط قوت فرصت تهدید و ضعف بنویسید کاریس فوقعاد سخت متوجه به خاطر همینه که استراتژیستان ابزارهای دیگری را هم پیشنهاد میدن که بر اساس در حقیقت این ابزارها ما از دید دیگه استراتژی ها رو در سطح کلان شرکتی میتونیم بنویسیم و تدوین کنیم. ابزار دیگه ای رو که ما خدمتتون معرفی کردیم ابزار اسپیس اسپیس بود. درسته <تصفيق> گفتیم در ابزار اسپیس ما از چهار منظر سازمانو تحلیل میکنیم و بر اساس این چهار منظر استراتژی رو برای سازمان استخراج میکنیم این چهار منظر چی بودش مالی و جذابیت صنعتی مالی مزیت رقابتی جذابیت صنعت و ثبات مونیتی درسته حالا، اگه سوالی دارید بفرم نه، الان سواج صحب مانی توی صحبت کردیم هاییز توی جزوا توی یه سوال بنامه پیشون هم تا یه تا تاعمالی سینرژی بود آه مثلا مانو بعد برانی داریم باش، باش، باش ابزار سومی که ما هفته گذشته صحبت کردیم ابزار؟ گرند گرند بود ما در ابزار گرند بر اساس دو بود سازمان سازمانو در حقیقت تحلیل میکنیم و استراتژی ها رو استخراج میکنیم این دو بود چیا بودش جایگاه رقابتی, رقابتی و رشد بازار رشد بازار. بازار خب یعنی بر اساس جایگاه رقابتی و رشد بازار میایم وضعیت سازمانو تحلیل میکنیم با حالا برون اساس میگیم ما چه استراتژی هایی برای سازمان میتونه مد نظر قرار بگیره و ابزار چهارومی که ما هفته گذشته صحبت کردیم ابزار پی سی بود، بستون کانسالتیشن گروپ در بستون کانسالتیشن گروپ بر اساس دو متقیر میاییم وضعیت سازمان رو تحدیل میکنیم یکی سهم بازار و یکی رشد بازار که بیدیم وضعیت سازمان به چه صورته و بر اساس آن استراتوژی ها رو استخراج میکنیم ببینید ما برای این یه های کلان شرکتی کلان شرکتی یک، دو، سه، چهار چهار ابزار خدمت رو معرفی کردید درسته و این چهار ابزار هر کدومش از ابعاد مختلف میان سازمان تحلیل می و وقتی شما از ابعاد مختلف سازمان تحلیل میکنید، احتمال اینکه اشتباهی کرده باشید یا به با قول معروف انحرافی داشته باشید به حداقل میرسه چون از اباد مختلف تحلیل کردید درست میگم چون از اباد مختلف تحلیل کردید بله، سوال، چه عباده در سواد دخیله؟ یازده عامل بیرونی و, و اله ماشاءالله عامل داخلی در اسپیس چهار برای بل، چهار متقیر در گرند دو متغیر و در بی سی جی هم دو متقیری دیگه یعنی از ابعاد مختلف ما میریم سازمان و تحلیل میکنیم و بر اساس هر ابزار استراتوژی های مختلف رو استخراج میکنیم درسته؟ ما تا اینجا خدمتون توضیح دادیم، هفته گذشته حالا یک سوال مهم مطرحه یک سوال بسیار مهم و خیلی هم جواب این سوال رو و این استراتژی های کلان شرکتی رو میبندیم تموم میشه ولی یک سوال بسیار مهم حتی انت من تظارم سوال شما از من بکنید. ما در سوال یه سری استراتژی استخراج کردیم درسته؟ در اسپیس یه سری استراتژی های دیگه استخراج کردیم در برد یه سری دیگه، در بیسیجی یه سری دیگه ولی کدومش باید برای سازمان در نظر گرفته بشه درسته؟ کدومش باید در نظر گرفته بشه؟ این سوالیه که الان ما میخوایم به جواب بدیم ما یک ابزار دیگری داریم اینجا خب به نام انالیسیس ماتریکس یاد داشت به فرمایید انالیسیس ماتریکس ماتریس تحلیلی ما در ماتریس تحلیلی نتیجه گیری میکنین که دیگه بابا کدوم استراتژی در سطح کلان شرکتی باید مد نظر سازمان قرار داده بشه در انالیزیس ماتریس ماتریس تحلیلی ما تصمیم میگیریم که کدوم استراتژی بعد در راستای کار سازمان قرار داده بشه کدوم استراتژی آفرین کدوم استراتژی استراتژی مهمیه؟ خیلی ساده جواب این سوال در انالیزیس ماتریس داده میشه درسته؟ خب حالا من یه سوالی دارم شما از جلسه اول نیدی دیگه درسته؟ آه. ما میتونید الان به من بگید حالا با یه مثال بای دیفالت بریم جلو تو سوت چه استراتژی هر استخراج کردیم؟ تو اسپیس تو گران، تو بی سی جی همون مثالی که من نوشته بودم. اینو میتونید به من بگید ها؟ الان تو جزوهتون. چیه تو سوت چه استراتژی هر استخراج کرده بودی؟ تو اسپیس تو گرند تو چی؟ نه نه تو جزوان نگاه کن به من بدون خب تو جزوان نگاه کن برو اصلا تو از سوات شروع کن تو ماتریس توز برو آها باشی ما مثال نوان مثال ها خودتون آره مستن. آره دیگه من چون باز نکنم اون مستن. شیطو خیلی سریع مستن. مستن. مستن. مستن. مستن. مستن. مستن. مستن. نه مثالای منو که نوشتید که ما بایدونو شیط خامل میشه بعد چی تو از من میگیریم؟ باید این بکر کردیم باید من باید استراتیک اشکالی بگم اشکال نداره، نه نه بذار من شیطو برز بکنم، اشکال نداره آسان نگفتیم توی این آیه من من ساعت و توث و تری شیت دارم ولی اسپیس توی شیت نداریم که داریم تو شیت آوردیم کامل کردیم آیه آیه کامل کرد آها این هم اسپیس بود درست ها حالا صدام نمیشه همون یواف بگیم چون خیلی یادمون میره جان همه کامل بشه بعدش میگیم بریم بریم بگیم اینا رو بعد هم هر یکی بگیم مست یادمون بی سی جی که دیگه من توشید نهی برای شما نوشتم بی سی اصلا نه، من فقط بس من ترجمه بی سی جی, خب. جی دیگه این دیگه. براه. براه. من اینجا مثال زدم دیگه آره، خب، ادامه دیگه اس ماتریس ماتریس تحلیلی درسته؟ نه. این ماتریس تحلیل خیلی ساده است. خیلی ساده. چون که خب بذارید خوشش. بگم با استراتیجی کلان ابزار ها یا متود ها درسته؟ نه کل كل استراتیجی کلان شرکتی رو اینجا ما لیست میکنیم تو ستون اول چیه؟ میشنونید تا من بگید؟ ستون اول رو به من بگید؟ یا اون کلان شرکتی یک پارچگیه عمودی روب عقب یک پارچگی عمودی روب جلو روزه. روزه. خب روزه. یک پارچگی افقی خب یک پارچگی افقی روسوخ در بازار درسته؟ توسعه بازار توسعه محصول توسعه محصول تنوع پذیریه همگن همگن تنوع پذیریه غیر همگن یا ناهمگن همگن تنوع پذیری و افقی کاهش درسته؟ برون سپاری انحلال درسته؟ بره ها؟ که ما ماده به چیا بودش؟ یکی سواته ها؟ یکی اسپیسه دیگه؟ گرند یکی گرنده که بی سی جی یکی بی درسته؟ بره ساده است دیگه هو؟ یه های مهندس چرا نهی نه نبیارم درم صحبت کردن ما اومده کردن نه نه من از نقاشون خوب نیست کجاکوله میگشم شما تو دفترچه دفتر جامعی شه این ماتریس چه؟ این؟ مالیس؟ یه کردیم تو دیگه دفتر یه دفترچه ای ثابت داشته باشه هر مطلبی گفته مش اصلا اول بینیسه در این متفاوت نه وقتش دارم باستا اینقدر خاشیه دارم میگه باید کلاس استراتژی. من یه جوزوه هفتاد صفحهی دارم درس استاتیستیکس من یکی از درس که تدریس میکردم قبلا استاتیستیکس بود جوزوه هفتاد صفحه از کلاس از دوره هم فقالیسانس هم دکترا. ولی خب جزوه خیلی درستی خفنی هفتاد صفحه انقدر من از این پول رو بردم از یه صفحه هنوزم دارم از امانی تا آمازون ها خیلی تو فکرم و تایپش کنم و اینا ولی وقت نشد و تا دست خط دیگه خب این بهش ما میگیم الانیسیس ماتریس ماتریس تحلیلی درسته؟ یعنی به عبارت که هران چیزی که من جلس افور گفتم انداختم توی یه جدول، حالا دقت بکنید نه دیگه، سوات اسمش، اون سواته دیگه خب دوستان، ما توی یه شرکت شدقت X، حالا من باید شرکت خودمون جلو رفتم شما شرکت خودتون میتونید جلو برید خب سواداتی که انجام دادید رسیدید به تو چه استراتژی استخراج کردید بخون رسوخ در بازار افغانیه درسته نه خب رسوخ در بازار رو تیک میزنی درسته تیک سلام دوومی چیه تنب و پذیری ها همگن غیر همگن وقتی دیگه نوشته تنوع پذیری اینجا این جفتش با هم دیگه همگن رو غیر همگن درسته سوامی چیه؟ سیستم های انگیزشی سیستم های انگیزشی چه استراتژی؟ یک پارچگی عمودیه؟ رو به عقب درسته آ خب استراتژی بعدی چیه ؟ اخه اح ما چه استراتژی؟ یک عمودی دوباره به عقبه برای زیر ساخته دیگه رو به جلو هم حساب میشه اتی رو به جلو هم حساب میشه؟ خب دانش سازمانی بله والا رو شد دیگه لازم نیست دوباره تیک بزنیم یه بار بزنیم توسعه تجهیزات بله والا بزنید تیکشو زدیم. درسته بیان پایین افزایش کیفیت محصول درسته یک پارچگی عمودی رو به عقب درسته مدیریت ارتباط با تامین کنندگان یک پارچگی عمودی رو به عقب این هم با تیکشو زدیم، درسته ترویج برند این هم یکبار چگه رو به عقب این هم باز؟ توسعه بازار هست آه، ترویج ترویج برند ترویج برند، آره راست میگی توسه بازاره درسته، ببخشید خب، این شار استراتیجی که ما تو سعاد نمشته بودیم تو سعاد این استراتیجی ها رو استخراج کردیم فقط تیک میزنیم میرویم تو را آقای اونایی که بیشتر تردشون پررنگ‌تر نیست داش نسبت بقیه اجازه تا, تا آخر آره تا خبر مشخص بشه خب بورن چی میشه اینجا سوال خیلی خوب کردی من یه بحث یه نکته جلسه گذشته به شما گفتم مثلا بورن برای استراتژی که همیشه شما باید استفاده, استفاده کنید پس ما همین الان بورن سپاری رو برای همه تیکش رو میزنیم یک چیزی نیست که تو بگی آقا مثلا این استراتژی رو تو سازمانم نمیخوام ببینم خب بریم صلابه اسپیس ها بم. ابزار بعدی روی استراتژی شیت بریم اسپیس اسپیس تو کدون فضا افتاده بود؟ این یکونیمه مثبت Xشه درسته؟ ها آه <نیت> ما فهمید بلا چون ما اونجو هسته دارم چی؟ چنده؟ صف ممیز پنج 95 این تو چه محیطی میافته؟ اگر بیان اسپیس رو نگاه بکنیم درسته؟ نه یه مثال دیگه این تو چه محیطی میافته؟ محیطه؟ یک محیط اگرسیف گفتم خیلی تو، وضعیت اسپیس، اینه وضعیت استراتژی شما یا تو این محیط میافته؟ درسته؟ ممکنه تو محیطه شماره یه دو بیافته، یعنی محیط رقابتی؟ ممکن تو محیط سه بیفته، محیط محافظه کارانه ممکنه محیط چهار بیفته، محیط تدافع حالا این حالت افتاده تو محیط شماره یک یا محیط تهاجمی خب، همون که من خدمتتون گفتم بریم جلو، از سوات خارج شیم این تفکر استادجی نه، استاتستیکسه آماره آره آماره های، داشته خیلی خوب منطقه من آماره به زمان فارسی نمیتونم تدریس کنم چون اون چیزی که یاد گرفتم مثلا میگم normal distribution آنین نورمال distribution میشه توضیح normal آماره تو دانشگاه ایران خب میدونی خب فارسیه دیگه مثلا hypothesis مثلا میگم فرضیه حالا این چند موردش خیلی نکار تو آمار خیلی کلمات یا هست. که یا شما به فارسی یاد یا به انگلیسی من خیلی یعنی کیبوردان فارسیشو نمیدونم ولی خب یکی دو بار کلاس من توی این که قرآن رو تو مالیده تدریس میکردم ولی تو ایرانم دو سه بار تدریس کردم دانشقه MSU که جونج بوده و محسسه ماهان اصلا مثلا شما رو این تفکر صدوری جز نشده دارین که من کسی؟ گفتم هم گفتین نه نه. لوگات فرنگي هم کلام اصلا فرنگي لوگات هم برداشتن ما آره. تمام کتاب هی تو اینا هم خیلی خوبه آره. کسی آره. انگلیسی میدونه آره همه خب تو کدوم واحد میافته واحد شماره انگلیسی ترجمه ترجمه روشه باز درست میبینید روبات شماره یک افته. چه چه بر شماره یک استخراج بشه ها نه, نه نه ها ببینید یک بارشگی عمودی رو به عقب درسته ببینید تنش بکورد فورورد هورایزونتال اینتگریشن یک بارشگی عمودی روبه عقب رو به جلو و افقی پس این سه تا اول تیک می‌خوره درسته ها بعد بله چی رسوخ در بازار درسته بره بره. برد توسعه بازار توسعه محصول و تنبا پذیری همگه, همگه. یا دیر همگه این دوتا ایشاره سپیستون محتمتی میشید داستان اگه نمیشید بپرسیدا من دارم یک کیسه بای دیفالت میرم جلو شما خیلی ساده ببینید تو سپیچه استراتیجی های اینجا تیک بزنید تو سوالچه استراتیجی تیک بزنید خب؟ خود کتاب خودشی کاملاً یه شیعه نه خلاصه کردی. کتابه کاملاً خود کتابه خود کتابه خود کتابه هم پاورپوینتش هم کتاب، اولیجیناله. اگه ما بعد تو ایران یکی دوتا نیستش که مثلا تو ایران دانشجو بدبختم دسترسی به رفرنس نداره. میدونی؟ مثلا تو خارج از کشور میگن آره مدیریت استراتژی چیت با ایرلند مثلا شما میایی تو کتابخونه آخرین ورژنش از خود کتاب. به به به به به به سلام سلام به. Strength, weakness, opportunity, threats. Correct. Nice work. میری کتابخونه کتاب خونه کتاب میخری متوجه کتاب اروژینال خب با بهترین چاپ و بعد اتچمنت این کتاب یه سی دی که تو خود سی دی باز کپی کتابه پاورپونت های اورجینالشه یعنی هر کتاب پاورپونت داره میدونی چی دارم میگم؟ و انواع و اقسام مقالات مرتبط و کیس استادیا و بزالگ یعنی اون کتاب اعلانیش یه دیکشنری کامل این مشکلی که ما داشت من انقدر از این کتابا داشتم اون تو زمانی که اومدم ایران نتونستم بیارم که همه رو فروختم یعنی برای هر درس من ریفرنسش رو کامل داشتم اون تو خوب دیگه فروختیم این آه... ما رو مدیریت استراتژیک از اون سی دی من استخراج کردم که چیزه آره خیلی خب پس سی دی اشو که می‌پرسیم می‌گید دریزین کپی کنیم. آره خیلی هم آره اونجوری آدم اصلا لذت میبره بخواد درسم بخونه ولی اینجا جزوه پاره کسی اکشترنال اگه داره من بخونم کلوشو بدم. بدن جدیوستان، صح... جلسه آره بعد من بیارم بگیرم آره تم... ازتون همهش به زبان انگلیسیه دیگه ببینید من به شما سمایی نماینده میدم هی داشته باشی؟ چه؟ تو چی آها من که ببینید او من به شما میدم، MBA، بی خب، مستر، آه، نایی ببینید؟ <تصفيق> یا case study at methodology دروست که ما تو دوری MBA خوندیم دیگه مثلا consumer behavior، مختار مشتری corporate finance، CRM ببین accounting for finance من accounting for managers همین درست که شما گزرانی حساب داریم این کل لکچر متاش powerpoint ها آنون تو powerpoint ها و زمان انگلیسیه دیگه این حالا خاصیت من داشته باشید چند چندگی که باستت نه بعد دیگه اگه باشیم. خب بریم سراغ گران استراتژی. درسته؟ گران استراتژی. کوتیم کران استراتژی بر اساس دو متغیره یا, یا, یا رشد بازار یا موقعیت رقابتی شماست strong competitive پوزیشن یا رشد بازار یا موقعیت رقابتی strong competitive position. درسته؟ پیش از این سرچپیه اکسل شیت ببینیم این سرچپیه سرچ پیه تو اکسل شیت. خب دو چک لیسته متوجه میشیم؟ دو تا چکلیسته دو تا چکلیسته Grand strategy استراتوژی های Grand میتونم، کلوم قسمت چی شد دهنم تو کلوم قسمتی چه با تا عجبه این در این بیش تو اینی بکنم الان میخوانم انجام بدیم الان میخوانم انجام ببینید گفتم Grand استراتژی جلسه گذشته خدمتون گفتم دو متقیم مهمه یکی competitive پوزیشن یعنی جایگاه رقابتی شما، جایگاه شما تو ذهن مشتری در مقایسه با رقبا، در مقایسه با رقبا. برند گفتید. خب؟ به نوعی شاید اصلا برندم بشه. به نوعی شاید برندم بشه. خب؟ و جایگاه دوم مارکت گروسه. مارکت گروس یعنی رشد بازار، یعنی حجم حجم رقابت. درسته؟ برد. حجم رقابت. یعنی به عبارتی دیگه وقتی بازار کشش داشته باشه ما میگیم مارکتش گروز شده و در نتیجه بعد حجم رقابت هم سنگین میشه تو اون بازار بازار داینامیکه، خب؟ یه چکلیست قد بکنیم روی یه وایت بورد؟ من بزرگش کنم اینه اسپیس، اینه اسپیسه دارید میبینید؟ competitive advantage یا competitive position خب ما پوزیشن که شما دیگه چیز امنشی پوزیشن خب خواه. از منفی 6 تا مثبت 6 ما نمره میدیم از منفی 6 تا مثبت 6 الان نمره بدن طب خب یه چک که از منفی 6 تا مثبت 6 و یکم مارکت گروث اینا بوده چک از منفی 6 تا مثبت 6 cabinet پوزیشن میبینید چک لیستو؟ یه چکلیست یک، دو، سه، 3 4 5 هفت، هشت 8 سوالیه. از فی 6 تا مثبت 6 میخوام الان نمره بدم برای شرکت، برای شرکت خودم. من نمره میدم. افته پیش. نه نرفیم الان تو توضیح بدم. هفته پیش هم توضیح میدم دیگه. الان برای شرکت خودم من میخوام از فی 6 تا مثبت 6 نمره بدم این چکلیست. خب؟ جرند استراتژیه بعدا گفتم ما جرنج مثلا رفتیم آه حالا چون توضیح میدم میگم می ما هفته پیش به شما گفتم برند دو تا فرایه بده یه کامپیتیتیو پوزیشن یه دونه بگید مارکت و بر اساس کامپیتیتیو پوزیشن و مارکت گروث شما متونید در چه بستیتی قرار می گیرید اسپیستون کجاست ولی چک لیستشو بهتون نگفتم ها ندارم میگم خب مارکت گروت و کمپتیتیو پوزیشن انا برای شرکت خودم پوزیشن رو من می‌خوام نمره بدم پتانسیل رشد در سازمان ما از منفی 6 تا مثبت 6 من 5 نمره میدم خب پتانسیل سودآوری 5 نمره میدم خب معنا اینا اینا رو این شاخصات چجوری مشخص می این این شاخصایی که الان شما پتانسیل رشد میگی شرکت پتانسیل رشدش چیه؟ آره؟ آره. چه چک برای ثابته. ثابته. یه چک لیست ثابت، من چک لیست پیش به شما نگفتم حالا دارم میگم. برای رن استراتژی هفته پیش به شما گفتم گفتم این اول شما با دو تا متغیر مشخص می‌کنید وضعیت اسپیس تو کجاست؟ آره من عادتیش دارم می‌کنم. خب الان برای کامپیتیتیو پوزیشن پتانسیل سوداوری رو من 5 دادم از منفی 6 دقت کن این شکلی است از منفی 6 تا مثبت 6 خب منفی 6 بدترین حالت مثبت 6 بهترین حالته من برای 5 به خودم دادم مثبت 5 پتانسیل سوداوری ما بالاست خب ثبات مالی تو صنفی که ما داریم فعالیت میکنیم، صبات مالیمون افتضاه افتضا یعنی شاید من الان بتونم منفی 4 منفی 4 میدم خب؟ خاطر مسائل تمرین که جان اگه منفی 6 پایین‌ترین عدده مثبت 6 بالاترین عدده منفی 4 داره خیلی دیگه پایینه خب؟ فنون تخصصی تو سیستمی که ما در فعالیت میکنیم بالا فنون تخصصی خب؟ فنون تخصصی بالاست و اینو عملاً من پنج بش نمره میگم به کارگیری منابع تو سیستم که ما داره فعالیت میکنی افتضاحه نبودی برای جرا سرپیش به کارگیری منابع یعنی چقدر ما تو سرعتی که داریم تولید و کالا و خدمات به راحتی میتونیم منابع مختلف رو به کار بگیریم و نسبت به تولید و کالا و خدمات ارتقا کنیم خیلی خیلی سخت میتونیم این کارو بکنیم ما مشکل داریم با تأمین کننده مشکل مواد اولیه داریم مشکل تأمین تجهیزات فیزیکی داریم و و و, و, و آخر اوکی به کارگیری منابع وضعیت ما از منفی 6 تا مثبت 6 بخوام نمره بدم اینو منفی 2 میدم یا منفی منفی 2 میدم سهولت ورود به بازار تو صنعت ما فوق‌العاده سخته سهولت ورود به بازار در صنعت ما فوق‌العاده سخته من نمره 5 یا 6 حتی بهش میدم بهره‌وری تو صنعت ما کلاً پایینه اینو منفی 3 بهش میدم قدرت چانه‌زنی تولید کننده تو صنعت ما افتضاحه منفی 5 بشه گرفتیم پونتو، عدد زدم اولی این اعداد پایین نوشته شده هفتاد خود، خودت و الان میارم. این میره تو همون نموداره ایکس و گره دیگه yeah, الان، الان کنید این ماتریس گرنده محالفه ایکس همون چی بود؟ کمپتیتیف پوزیشن کمپتیتیف پوزیشن درسته؟ کمپتیتیف؟ اینجا پوزیشن پوزیشن معلیفه مارکت؟ باشته مارکت درسته؟ الان پوزیشن و معلیفه یا Y؟ من گرفتن؟ مصبتن کجا اینجا، حالا گرفتی پوینت‌ها؟ ببین آقایی های چیست گرند، استراتجا نه گفتن کامپتیتیف پوزیشن، جایگاه رقابتی؟ جایگاه رقابتی؟ مارکت گروف، رشد بازار رشد بازار ها؟ یه معالفه X و Yه X من تو گرند کامپتیتیف پوزیشن، Y مارکت گروفه، اوکی؟ شما کوالیتیو ری میتونید در نظر بگیرید تو کدوم سپیس نفته بسید ولی ما لاری منان کم میشم میکنیم اوکی؟ به اینطور آقا وای چیه؟ مارکت پروتز رشد بازار یعنی رشد بازار چکلیسی که تو اینجا وجود داره به چه صورت سهم بازار، کیفیت، محصول، ورور، ورور، ورور، ورور، س بازار خب برای سازمان من از من 6 تا مثبت 6 بخواان نامنمره بدم مثبت دو نمره میدم دو. کیفیت محصول 5 نمره میدم چرخه اییاط محصول افتضاس تو سازمان ما یعنی خیلی زمان یعنی وقتی محصول میدیم به مشتری زمان میبرد تا اینا مجددن بخوان. درخواست محصول مجدد بدن این من از منفی 6 تا مثبت 6 یک نمره میدم. چرخه جایگزین محصول تو سازمان ما عالیه. خب؟ چون محصول دیگه یعنی اینجوری نیست مثلا من توربین می‌سازم به مشتری اگر رقم دیگه بعد میگم من یه چیز دیگه می‌سازم. یعنی عملا جایگزینی محصول یا اون تهدیدی که تو پورتر هست خدمات یا محصولات جایگزین وجود نداره. این نمره بالا میگیره. نمره بالا میگیره. بله 6 میگیره. وفاداری مشتریان این خوبه بد نیست سه به کارگیری ظرفیتهای رقابتی تو رقابت من اوکی هم مشکل خاصی ندارم چهار میدم به خودم فرون تخصص تو سیستم فوق العاده بالاست پنج میدم اتقام عمودی اتقام عمودی یعنی چی؟ میگه اتقام یه چقدر توسط تا چیزات زیر ساختت قویه که بابستگی به تامین کننده و مشتری به حداقل برسه می‌دونیم؟ وضعیت ما زیاد جالب نیست شاید من اینو منمره‌ی منفی سه بهش بدم تخصصی خب. با هم بودش بله بله تو اسپیس سا... نه، تو همینجا نبود کجا بود؟ آره، دو بار دو بار خب. <تصفح> چرا بودست؟ آره، دوبار دیده دوبار دیده شد خب؟ امیلیتین عدد چرا دو هشتاده هفت دو با؟ هشتاده هفت هفت ۲۸۹ کجا میافته؟ اینجا دیگه، درسته؟ وضعیت شرکت من تو این محیطه تو محیط شماره یکه خب؟ حالا باییم گرم باز کنیم چندتا رو و باییمسیم چندتا چیکلیست چیز رو کنید؟ تو همون پاورپوینت هست که همه توش بود اصلا. نه این کامل نیست دیگه این پاورپوینت. چی؟ پاورپوینت. من پاورپوینت اصلی رو دارم بازم. نه نه. اکسل. بله بله. بله بله. بله خب مایت کدوم مایت باعث شد؟ یه. مایت یه. درسته؟ بله. آ؟ بله. حالا استراتژیکا چی تو پوینت یه؟ مایت یه. مارکت دگلوبه. تو سیج بازار چی میزنن؟ درسته؟ نه نه نه. خب. روز سوخ در بازار تیک میزنم درسته؟ دو محصوم توسعه؟ محصوم تیک میزنم درسته؟ فوروار و بکور و هوریزنتال اون سه ستای اولم تیک میزنم روزی افاقی تنب و پذیری یا همگن بعد تنب و پذیری همگنم تیک میزنم درستم هست ما صرف غیره همگنه نبدیم سرکش، همگن گرفتی چی شد داستان؟ چرا که کجا که رنگین؟ یهالیگه. محیط یک افتادم آه. نه شماره. من خودم دارم میگه برای کار. این آره. آره. آره. آره. داریم ولی شما افتادی. تو بهترین شما افتاد. نه این به استراتژی نیسته. این خوبه این خوبه این بعد بود چرا و افغی. یک و بله بله فیکس ده. نه اون بهترگوزی بله بله شد چی شد؟ ها؟ خب شما که افتاده یعنی در صورت ملوزه از استراتژی تهاجمی استفاده کنیم دیگه. تهاجمی. که... چرا؟ توی اعلی شما یک افتادید می در ساعات روز و استراتژی تهاجمی استفاده به کنی تهاجمی نداریم این تهاجمی نیستش بحث تهاجمی نیست میگه تو کدوم محیط میخواهی بچه استراتژی رو باید اختصاص کنی این مثل اسپیس نیستا اسپیس اگه شما تو اسپیس می این محیط محیط تهاجمی بود این گرنده این اسمش تهاجمی نیست این محیط یک اسمش شن کوارتره یک گارسیا رو ها بله این بازار گفت چی بود تعال رو بازار؟ تمرکز رو بازار یعنی چی؟ یعنی در بازار یعنی. رول رسوخ کجاست؟ زدم س... داریم در داریم خب سال ابزار سوم چی بود؟ ابزار <تصفح> چی بود Boston ادامه بدهی؟ خب سازمان من دو تا محصول تولید میکنه متوجه هستید یه محصولش تو کشکاس خب یه محصولش تو کوسشن مارک یه محصولش تو علامت سواله درسته؟ درست دو تا محصول ما تولید میکنیم یه محصولمون تو شیر شیردهه یعنی من تعمیرات روتور انجام میدم یه محصوله سهم بازارمون بالا حجم رقابت هم پایین اینجا هستیم یه محصولمون ساخت قطعات حالا ماشینالات دیوار اون تو کوشن مارک سهم بازارمون پایینه حجم رقابت بالا آه؟ حالا به من بگید شما من یکی تو کشکا هم یکی در کوشن مارک کشکا چه استراتژی بعد اتخاذ میکنیم من بگید لا براتون من یه پرتغالی داری میگی سه بازار نه نه اینجاست دیگه استفاده بکنیم یا تو چه استراتژیون معلوم معلوم شما دارین شما نرا این استراتژی ها داره، اینا, داره. اینا. مبینی؟ شما داری؟ نه دارین چرا اون نه داری؟ شما دارین بله دارین شما داری ها خانم شما هم دارید دیگه ها اینو قاب بشیرده بله اوکی قاب استراتژی ها شو من بگید من یه محصول تو درسته؟ استراتژی قاب شیرده رو به من بگید کارشی عمودی یک بازار خو ترجمه پزیری هامگی خو ترجمه پزی هامگی هامگی نگه دار خو هامگی فرانس فقط نه نه سفاری نه من زدم داشتش داشتش شما اشتراکه و پذیب داره قضیه رو. حالا با رسالات یه محصولیمونم توی پویسچن مارکه توی پویسچن مارک چه استراته چیایه؟ علاوه عمودی؟, عمودی. عمودی. افقی عمودی رو زدیم؟ عمودی رو به جلو و رو به عقب، درسته؟ افقی؟ نه، نه، نه خب؟ پذیری افقی ممید. ممید. ممید. پذیری افقی و؟ گرفتی قضیه رو؟ مم. حالا، چون من دوتا یه محصول. مخصولم اینجا افتاد یه محصول توی مار رو در نظر بگیرم، ممکنه شما همش توی از کشکا کشکار فقط در نظر نید. تعداد محصول مهم نیست دیگه چرا دیگه هر جا هر چند تا محصول باشه بعد بزنیم یعنی تعداد چی رو... مثلا ده تا محصول داریم خب راجب ده تاش بعد اعمال کنیم ممکنه ده تا محصول تو تقسیم بشه یه سرش تو استال باشه یه سرش تو داک باشه یه سرش تو کوشن باشه یه سرش تو کَش کو این جریان چیه حالا دیگه اونسته دیگه کلانت دیگه از این خیلی عالی میشه چون مثلا من محصول دارم به استراتژی خیلی کاملی به من بده بقیه روابطی اها اون سو صد در صد نه من دارم محصول دارم میخوام ببینم اینا تو بازار چه شریعتی دارن چه جوریان میتونم با این راحت تر انتخاب بدم سوال آقای نبی اینجوری شو کامل کرد که ما اگر محصولی مختلف داشته باشیم از این ابزار خیلی بهتر میتونیم استفاده بکنیم یا به عبارت دیگه شما اصلا پی سی جی رو جداگانه محصول به محصول میتونید در نظر بگیریید می می‌دونید 10 تا محصول داری شما مثلا تو کوئسشنوار این محصول تو کوئسشنوار که این محصول تو کشکاست حالا تو کوئسشنوار چه اثری تو جایر برام داره تو کشکا چه اثری تو جایر جلو من من یه چیز خیلی کلان و کلی و جامعه دارم به شما میگم و شما از هر کدوم از این ابزارها میتونی در شرایط مختلف استفاده بکنید و تحلیل بکنه سازمانه ما عادت نه اینه که یه سند کامل رو میگیم فقط تو میتونی بی سی جی رو بردارید به معنی ابزار محصول محصول ببینید هر محصول که درون واسطه بی سی جی میاد چه تصمیم رو بس... چه رو بگیره چه ستاره‌ای بی سرمایه کنیم که بره به سمت محلش. ستاره استراتیجی هاشو گفتیم خانم بله ستاره جا اونجا میشه سرمایه گذارم اصلا ستاره حالت ایش که تو باید خیلی با قول من پول بریزی تو سازمانه الان استراتیجی هاشم اتخاظ شده در برای همه شما نشد خب تا اینجا متوجه شدید؟ آقا ستون آخر اسمش هست کانت یعنی؟ یعنی بشمور بشمور کانت یعنی بشمور خب؟ جم بزن آره دیگه جم بزن یک بار چکیه چند تاست؟ دو. یک، دو، سه، چهار درسته؟ ام. عمودی رو به جلو چند تاست؟ چهار تا، افقی چند تاست؟ چهار سه تا سه. درسته؟ رسوخ در بازار، چهار تا توسع بازار، چهار تا توسع محصول، چهار تا تنب و پذیری چند تاست؟ چهار تا؟ قیل همگین چند تاست؟ دوتا ترنب و پذیر افقی چند تاست؟ یه دونه کاهش صفر برون سپاری چهار تا انحلال هم صف انتوجه منظور من شدی؟ خب؟ بلنه تو بلنه تو بلنه حالا می‌خوای مولعبیت بندی, بندی کنیم کدوم ادر کارو چهار دیگه هم هم هم هم. اونایی که چهاره A میگیره. بعدش سه رو داریم که بی می‌گیره درسته؟ بعدش دو رو داریم که سی می‌گیره و بعدش یک رو داریم که دی می‌گیره بعدش سف رو داریم ای می‌گیره اینجور اولویت بندی کردیم یا به عبارت دیگه اولویت اول استراتژی‌های ما یک پارچگی رو به جلو یک پارچگی عمودی روبه عقب درست؟ محسولی سه آن سه تاست چهاره ماست که میستیم دو سه نسیب ما چهار کزه میستیم من اینجا سته دارم نداره دو سه نه نداره این میشه بی دو سه نسیب سته تا دارم بگیم اولویت اول استراتژی های کلان ما کدوم هست؟ یک پارچگی عمودی رو به جلو خب؟ رو به عقب، رو در بازار، بزارد. توسعه بازار، درسته؟ ثانو پازیوی همگی و پرنسپالی. این استراتژی هایی که ما ات میکنیم می کنیم برای سازمان و مبد نزولمونه در اولویت اول یا فوق پررنگه یک، دو، سه، چهار، پنج، شش استراتژی. که کنه ما تو اولویت اول کارمون باید در نظر گرفته بشه متوجه منظورم من شدین؟ حالا نکته گرفتی چرا ما از ابزار های مختلف استفاده میکنیم ببین سواد یه خروجی به تو داد اسپیس یه خروجی میده رند یه خروجی میده بی سی جی یه خروجی میده بریم ما همه اینا رو جنب بندی کنیم کدومش اولویت بالاتری داره وقتی یک بار چه عمودی رو به عقب و رو به جلو تو تمام ابزارها تکرار شده، پس این اولادیت اول داره جانم ما حتماً برای این چارآمل رو بریم حتماً چارآمل رو اگه می‌خوای یک سنده کامل برای سازمان اگه نه می‌خوای تحمیل‌هایی جدا جدا داشته باشیم می‌تونی از هر کدومش استفاده بکنیم، مسئله‌ی نداره ولی یک سنده کامل استراتیجیک برای سازمان همه‌ی عبزارو رو بعد می‌بیس بسید <تصفيق> رو سوخ در بازارم فکر کنم چانت آن یک باشه اگه افاقی سه آنه رو سپرگازار چهار مثلا من نگه ها میکنم سیستم از این یه سیستم کامل اصولا من همین کاره انجام داریم من اون تو بشونم این اشکالی نداره تو نوشتن سنده استراتژیکه مثلا به یه عذیه دیمون دوتا ابزار استفاده کن مشکلی نداره ولی زیاد رلایبل میس قابل اعتماد هست. یه چیز کامل و جامع اینا که تو همه ابزارا رو ببینید. این قسمتشو یه بار دیگه توضیح میدم. آخرین قسمتی که چجوری ها اینا رو چی چی بس دیگه به نقشه راهه. آره. قسمت آخرش که چجوری حساب کردیم که کدومشو استفاده کنیم خط زدیم. اینجوری شد. ما این ای دیگه ایار من خط زدم، ها شول زدم. ها یعنی اینا رو اینا اولویت آره. اونایی که ایه و هاشور زده، آنون تو هاشوران رو اینا این ها اولویت یکی یعنی بالاتری رو داره متوجه شده، داستان چی شد؟ ها؟ تموم شد کوپره لیول استراتژی تموم شد قسمت سختش اینجا بود؟ یا حالا قسمت سختش جلوتره؟ نه، سختش بود بندهش دیگه سرا زیری، سریم بود تاش any batch we'll get them all che che you know what شلوم یه مثال با جلو بله <coughs> من این رو همه رو بهتون دادم آم والت دیسنی سنده استراتیجیک یه مثال من همه رو دادم والمارت، اپل چهارتی نهمشون مستاد؟ آره دیگه والت که فارسی من نه، من بایدام شبیه تو زمن نه <تصفيق> <تصفيق> من خودم یه شخصه میتونم این چه هیچی من فقط بخواهم اخوان نقشه را رو بتونه بدم لازم نیست من خودم توش ترونه شون برد به من خودم هم نخوندم ایش با فقط بخواهم نقشه راهو رو نشون بدم سنده که بهتون بگم سند استراتژیک این ربشی که الان شما دارید آموزش میبینید یه چیز کاملاً اینترنشنال و بین‌المللیه مثلا من اگه چه نه چه روی ظلم باشه که بتونم نقش بتونم بفهمم ب... نه راحت‌تر می‌تونم مثلاً درم <تصفيق> جلو آره اینو فارسی دیگه ها آره <تص> اوکی اینو فقط جهت مثال من دارم دیگه. اون متوجه من شدی آره آره بکنه چه قسمتی باشه نه که مثلا چیزی بفهمیمش یکی مثل بایدو من بایدو. ممش. فارسی باشه بتونم بکنم درکیش بکنم بیام تطبیه نه الان شما سند راه خودم الان این سند راه متوجه شدی نه شر راهو بله خب اینه حای که فارسیه که آره خب اینه مثال دارم میزنم فقط ببینید شکل شکل چارچو به نمیشتنش چارچو به نمیشتن فقط چارچو به نمیشتنش هم اینه؟ هم اینه فقط این به زبانه من فقط واجه داره دیگه مثلا هم این با دی با ببین مثلا بایی سی جی و اینا به همونه همین همین با کنم مثل پلنه نه. م... نه، نه نه نه نه کنیم منم مکس نو در حقیقت اصلا نخوندم فقط دیگاه کنیم وال بیس نیم ببین اول داده. که ها وات دیسنی کی بوده چی کاره بوده فاندره بالا فان، فاندره وات دیسنی گفته رو گفته میخوام بگم بیار سنده استراتژیک شما مرحلی مرحلی چجوری میتونید بنویسید خب؟ بسی تقرام بخشی از اولای رو به همون پلن میشه آره، آره با. خب؟ به <تصفيق> همجین رفته چلو؟ چی کار کرده؟ هیستوریش رو سال ساله 2008 چی کار کرده؟ دوزار رو چی کار کرده؟ خب؟ بعد دیوکیشن مپشه یعنی تو کجاها الان تو با کدوم بازارها پنتریت شده رسوخ کرده تو دنیا رو میبینیم تو اکثر بازارها رسوخ کرده والدیسنی بعد بازی سری توضیحات دیگه این میژن استکتمنت والدیسنیه رسالت والدیسنیه والدیسنی چی میشود؟ والدیسنی، کارتونای والدیسنی آمه آمه بوده, بوده. سینگرلال رو میدی کارتونه شدیم کارتونه سینگرلال، چرا زیبایی خفته، میکیماز نه ما رو واد دیسنی ها دیمید می‌جرس به رسالتش، ببینید اول رسالت بعد چشمنداز نوشته خب، سوعت انیلیسیس این تحلیل سوعت، حالا تو نقاط قوتش، نقاط ضعفش، نقاط ضعفش، فرصت ها، حالا آنه یه مثلا انداخته ما رو باراش اوباما سی پی, ام. سی پی ام چی بودش؟ کاستن هر نه چی بود ازش، اونه که سی پی بود سی پی چرا؟ وضعیت در مقایسه با ماتریس، فرایند رقابت، وضعیت سازمان شما در مقایسه با؟ روغبا حالا حالا بقیین سواتش اومده وزدهی کرده EFE ای ای میشه چی؟ External Factor Evaluation تحلیل محیط بیرونی خب؟ بعد خدمت شما عرض شد که حالا یعنی تحلیل مالیش IFEش اومده وزداده تحلیل محیط داخلیشو و بعد رفته سراغ استراتژیک فرمیولیشن این ماتریس چیه؟ توز درسته؟ اس دی دویو او تی بعد رفته سراغ ماتریس؟ اسپیس yes, خب؟ تو ماتریس اسپیس وضعیتش کجاست؟ اینجا خب؟ بعد رفته سراغ ماتریس؟ گراند که توی محیط یکه بعد رفته سراغ؟ بیسی یه سری محصولاتش تو استاره یه سری محصولاتش تو کشکاس درسته؟ برای هر کدومش باز نمودار این چیه؟ and this is matrix خب؟ در نهایت ببینید ستون اول آی ایه یایتون باشه، اسم دیگه سوال آی ایه خیلی خلاصه، اگه خواست یه دیگه تو بیدیم اصلا شما داری صحبت میکنی یه در فوقی تحلیل آئی ای رو شما کلاس تو خیلی بالا میره ولی مثلا بگی سوات همه سواتو میدونه آه همه همه سواتو آئی برو تو فضای آئی ای آنه چرا میگنن آئی ای یاد بگیرید اینترنال اکسترنال سوات میشه تعلیل محیط داخلی خارجی دیگه آئی هم میشه اینترنال اکسترنال رو ببینید خب؟ اسپیس رو نمشته بی سی جی رو ستون آخر چیه؟ کانتیب بایدترین نمرش مانه چه استراتیجیاییه؟ مارکت دیولوبمنت، متوجه داستان شدید؟ این عملا، آیه، این نقشه راه شماست پله اول سوال پله دوم اسپیس پله سوم گرند پله 4 بی شماره بزن خدا این نقشه راه پادم به شخص و مشکل بولیم ازتون نسیم بله، بله فقط خواستم بگم که چند تا مثال توی تو از اسناد استراتژیک ازش استفاده <تصفيق> کنی، بد نیست بعد نیست ازش استفاده کنی اپلو براتون گذاشتم فیسبوک رو گذاشتم گوگل رو گذاشتم مک دونالد رو گذاشتم پپسی رو گذاشتم بالمارد، بالدیسنی شرکت خود هم گذاشتم میخواهم ما شرکت خود رو هم این نگاهش بده ها؟ در شرکتون چی رو ویرا بیرام؟ ویدیو ویرا تقام سا توی ایرا خم نمیشون، چون ویرا، خوب. بعد این موقعیت آلا جغرافیاییه در ایران این کارخونه است. مگه بحث فایبسو چرا ما جدی میگیریم؟ کف کارخونه رو ببینیم. یعنی آش یعنی از کافی بیمارستان تمیستره. همینش همیشه یعنی عکس خودت رو میتونی کفش. ها؟ ویژن استیتمنت ما، چشم انداز ما کپرند استراتیجی های ما اول بعد تحلیل سوات نقاط زب، قوت تقدیدها، فرصتها بعد ارزیابی همون وزدهی ها اینا تو سوات، درسته؟ بعد تو ماتریس جی وضعیتمون حفظ و نگهداریه بعد رفتیم سراغ ماتریس توز. توز در ماتریس توز این استراتژی استخراج شده بعد رفته توی کیو اول اولویت بندی شده خب؟ بعد رفتیم وارد ماتریس اسپیس شدیم درسته؟ این ماتریس اسپیس در ماتریس اسپیس نمره دیگه کردیم خب وضعیتمون وضعیت کامپتیتیبه یا رقابتی و بعد ماتریس سی تحلیل رقابتی و اله آخر ماتیس BCG، درسته؟ یارو وضعیتمون کجاست؟ تحمیل‌هایی که شده؟ و بعدم کانت کردیم که آقا چه استراتجی‌هایی درزن نظر نظرم استانداردی هست که کدوم سازمان ها نیاز به چی دارن به نوشتن سناد استراتژیکال یعنی چی یعنی میخوام بگم که مثلا شما وقتی الان میایید طرح تقریبا نظامی مشاور دل بخواید که 50 نفر بالا هر سازمانی نیرو داشته باشید یا طرح تقریبا نظامی چیکار کنید اجرا کنید من سال از این سؤال دارم استراتژی یعنی چی گفتیم که راه رسیدن یعنی برنامه ریزی, برنامه ریزی. همه سازمان ها نیازمده برنامه ریزی. حالا این یعنی که فر نمیکنه چقدر چ اصلا همه سازمان یه سازمان ها نیازمند برنامه ریزی هستند حالا شما میخواد بگی یه سازمان 5 نفره یه سازمان 500 نفره سازمان ها همهشون نیازمد برنامه ریزی. همه باید این برای اینکه موفق باشن این مسیر رو بقی کنه اصلا از هر من شمسه شما مگه میشه برنامه سازمان را درشته بشید اصلا من مخلص کردم اگه شما نمیخوه برنامه داشته بشید چرا اومدید اینجا؟ بیره چی دارم میگم شما اومدید که این نحبه برنامه ریزی رو رودمپ و همه نقشه راه رو تو سازمان ها یاد بگیرید خیله خوب چه طوریدی باشی چه نمیکنه هیچ فرقی نمی کنم هیچ فرقی نمی بگم. دوستان، سازمان هایی که اطلاعات از نوشتن سند استراتژیک ندارن مشابه میگیرن و خیلی جالبه این مشابهی میان در سازمان ها همین سند رو برای سازمان مینویسن همکاران من هستن همکاران بنده نه، نه اساتیدی که میان مدیریت استراتژیک حد اقل پولی که میگره 8-9 میدون بریم یعنی اینی که شما دارید الان آموزش نمی که الان من دارم به شما آموزش می اینا فوق العاده ارزشمنده روش متمرکز بشید شرکت هایی که مدیر شرکت یکی میاد بهش مشاوره میده میگه او تا هر که موفق و بسند بس استراتژیک داشته باشی یاران نمیدونه سند استراتژیک چیه بلد نیست یه مشاور میاد آهای دکتر فلانی میشه توضیحات لازم ما برای شما اسپیس می این کارو میکنیم چشم اندازتون اینجوری میشه اونجوری میشه یا رو هم میشه واقعیت هم نشه این واقعیت کنیم تو بازار ما وجود داره آه. برای یک نوشتن سند استراتیجیک حد دقل 80 منو تومن میگیرم اون سنده کاروردی نداره مزرد بیره اشتاد آنه پشکر همه حد یه کار برد نمیشه نه وقتی خود شخص کار انجام نمیشه راست نگه یه نوشته یه چیزی شما وقتی که خود شخص ندونه کاربردم طبیعتا پیدا نمیکنه. ولی واقعیت آقایت اینه که ما نیازمند این سند هستیم خب و الان آن چیزی که داریم یاد میگیریم واقعا ارزشمنده چون من دارم میبینم شرکت ها خیلی توی نظره پرداخت میک از ما شبه هیچ؟ من دوستان، سراغ هرم استراتژی پیک هرم چی بود دوستان؟ و؟ پله اول چی بود؟ آه؟ کشمنداز رسالت خب لایه دوم از این مسلس چی بود دوستان استراتژی های؟ تجاری تجاری، تجارتی تجاری خب، استراتژی های تجاری چیه؟ استراتژی، تجاری تجاری خب استراتژی های تجاری چیه استراتژی تجاری ها بحثت اینو نه؟, نه. استراتژی چه جلویشی؟ این خوبه. بود از فا... این یه یه کلاس کوچک یه کلاس کوچک بودیم. قلتیم... اون یه کلاس کوچک بودیم. اون یه فقط خیلی خب، لایه دوم این مسئله از استراتژی های تجاری یا بیزینس لبل استراتژیزه درسته؟ بله کبره لبل استراتژیز یا استراتژی کلان شرکتی چی بود؟ استراتژی بود، ما که ما میخوایم خواهیم بکنیم که سازوان در سطح کلان می خواهد کار کنه درسته؟ بله استراتژی های تجاری، ما رو می به اون سمتی که خب means how to neutralize the competitors threats شگونه تهدید رقابت خونصام میشه استراتژی تجاری استراتژی هایی و برنامه هایی که شما تو سازمانت می چینی تا تهدید رقابتو خونص کن گرفتی پنچو؟ اره خب یه چند دقیقه استراحت کن آها تصادم ایجاد میکنه Thank you Welcome ساد بزنس پلنینگ رو چه درسته سه همه همین الان شما بیزنس پلان دیگه شما بزنس پلن اینکه برای سازمانمون بتونیم یه این بیزنس پلن دیگه آقای است. ما وقتی نه ساد استراتژیک کامل‌تر از حتی از بزنس پلن دیگه. یه هستن از شما بزنس پلن بخاطر همه صورت و باید انجام بدی رو انجام بده جی اینم این بزنس این بزنس تجاری کامل یه شرکت بدیم به شما کامل، اصلا من دارم تجاری به شما بگم منطقی تر از تحلی تجاری، می‌دارم چی دارم تو تحلی تجاری ممکن سوات رو برن دیگه باره اینکه اسپیس و گرند و بی سی جی نشن تو تحلی تجاری، خیلی نشکتا ولی ما داریم گرام کامل